من راه می بود شد که مرحوم استاد رزوانون داختالاله علی یک مناطشاتی رو با مرحوم شیخ داشته در اول بحثشون که مرحوم شیخ ادهی از آیات رو نقل کرده و مرحوم هایی یعنی اشکال کردن که این آیات نکتی به ریبت ندارد در مرحوم های اول ملایقتن بعضا کن بعضا خب ممکنه بعض از نواردش قیبت رکسه رو و مرگومی روانی هم قرو کرده که این روایت که آیه مبارکه ندرین یوحیب مونتشی از خواهشه این دلالت بر قیبت داشته باشه لیکن با زمینه تفسیر و روایت احبیبه لاخی نفسه نیست ناست خب ظاهر این ملدی یوحیب مونتشی از و البته اراده اشیای یعنی حتی انسان نخشه کشی رو به نخی‌کشی ببره ساجر الله مثلا بیا توی کلی سینما درست بکنه برای اینکه مردم مثلا به رو بیارن یا مثلا یک برنامه‌های اقتصادی برید که مردم برای رفع مشکلاتشون ناجی رو به رو بیان خب اینا مصادیق انندگیه گونه انشعاع فاحشه اینا هستند و اما اینکه بیایم این ای به شخصی رو بگیم مخصوصا با اون یه کورال محمد به ما یک رح و دو سمع. این عنوان نلدین یا حضبون تشیر خواهش است یه روایتی بود که آیه کویی در اینجا فرموندن ضعیفه اون روایت همینه که من خواهده که محمد مارت و ایناه و سمعهت پا اوزناه این مارت پا ایناه و سمعهت پا اوزناه اشاره به غیبت در مقابل بختان که دروغه یعنی راست هم دیگه دروغه میگه واقعا داشته برادر مومدش فرور من آقا و آقا حضر دقیق این منالدین یا هی بو خروج و کردن بلد. به این محلم و اشکال هم کردن که آقا ضعیفه، اون آقایی که مقبلشون در باشه اینشون مرسله هست کردن مرسلش مهمون در کتاب کافی هم آمده این حدیث. در کتاب کافی نرو شده و ابن عبی عمر هم برده از سابره هست و اما صدوب در کتابش باز داده ابن عبی عمر رو, رو همین رو از محمد بن همران ایشون روشه مجهورتون رو محمد ابن همران تو ظاهرا چیز باشه یعنی یکمی دقت نکرده از کنیم سابره رو بات دیگه رو بات سابره رو متعرس شده محمد رو شدیم مرحوم نجاشی از محمد بن حمران نهدی نام می‌ذاره و توصیفش میکنه که یک محمد بن حمران نهدی که پسردارادر زوراره است حمران بدر زوراره خیلی از مرد قهرازی خونوار بزرگوار جایوف محمد شد. این راه رو توصیه این ثابت نیست توصیف اینی که پسردارادر زوراره است از حضای ایشون باید گفتوید که مشترکتون نه مجبورتون این هست بناد که اگر حدیث محمد ابن نهانگان مطلق باشه مشترک میشه نیم داریم نهدیز که سرعت یا این پسر بردار که توصیف ثابت نشون ارز که من در محل خودش اثبات کردیم البته انصافا اثباتی شد چونی اثبات محکم نبودیم ازادشم دیگه زن ما بودیم عرضی رو بخوایم بخونی اون شواهدی که خود ما به بشترید نیدن کسی هم تمنبخ بیدا کرده باشه که این دوتا یکی هم ولو محمد ابن همران پسر برد در حصد و قائده شیبانی اشان برد زراره آبدا و خاندانه ایشان صورن عرب نمودن از همین منطقه ترکیه هم بودن به اسطلاح از ترکیه بایدن. و بعدم ولایی که پیدا کردن به بنی شیبان اصولا شیبانی و الویدان و لذا اون محمد این همران نهدی نهد از شیبانی و که این به ذهن ما بعد از شواهدی که جمع آوری کردیم ظاهرا ایشان به خاطر از اینجهاتی سر میکنه خودش رو از شیبان خارج کنه و جز موالی نهد قرار بوده به ذهن ما اینا هر دو یکی چون درستش سابقا کردیم و انصابا هم یه قسمتش در کلمات احساب نه که من استفاده به کلمات احساب این زرد خودم ده یعنی اون شمون سیازی خود اونه که شمون جواهی ما که این نفر یکی هم و ایشون سعی کرده خودش رو با انتصاب به ایک دیگه از خاندان زراره چون از کلمه به خاطر شوهنده که پیدا کرد حتی بریه خاندانه بچه های برادرش هم گفتن زراری به همه میگفتن این روی جهاتی به نظران خودش رو بردنی نه به سباب را بسته کرد توضیحاتش به مدار گذاشت مدار شده بختی این پس حدیث سندش ضعیف نیست و مجبولم نیست که ایشون نوشن حدیث سندش معتبر این راجب حدیث در این بسند این نمن کلام همون مطلبیست که ما چرارن ارخ کردیم مشکل دیگری در روایت زراره در روایت ابن عبی اومیر با جلالت حضر ابن عبی اومیر این از که ممکنه همیشه از کردی متن روایت ابن عبی اومیر هم خللی پیدا کرده باشه آمینه خاک بوده آب بوده آب بارم بوده به نوشتی های کرده و خرابی ایجاد کرده در ازا مرسل شد روایتشان. خب همون آب و ممکنه به مرز بخورده مرسل میشه به سند رو مرسل میش ممکنه به محط هم بخوره دیگه خاطوش او نده کرده <تصفيق> به صندت اصابه بکنه ممکنه به محط هم بخوره یزا در روایت مثلا همین روایت در یک مسئله کلیمی مرسل آمده انده از اصحابه همین روایت در کتاب صدو با ذکر برداشت محمد نه امرا این احتمالا دو نسخه از کتابه نبی امرا شد در نسخه اصلیش محمد ابن همگران بوده این نصحی که برای دست کلینرسی نصحیست که باران خواه پشکرده و به صورت مرسل بر آمده. یا به اصطلاح این نکتران در برگ کنیم این ارسالها ها تاره هستند جدید جدیدن خود روایت فر اصل مرسل نبوده چون در بحث اصول قبلی هم فر محمد اصحاب برد زلاطی زعا گاهی میشه عمل اصحاب بیرات زهیف این طوریه وعنی ما الان او رو زهیف میبینیم اما در حیقت این زهیف نیست یعنی اصحاب در مون مد... چون اعرض کردیم مثل ابن عمر که کتب نوشته و روایات این رو اصحاب بررسی میکردن در جلسات و اجازه درست مبارنه میکردن بررسی میکردن حساب کتاب بود این حدیث رو میدونستن معتبره حالا ما ارسال میگونیم چرا؟ چون تاره بوده؟ اینکه در عرض ایشون اسم اون راوی رو نمیدونه. گفته بعضی از اصحاب بر من نقل کردن. نه، اسم اون شخص معین بوده، میشه روایت. اسم شخص معین بوده، این نما در این نسخه ای که در اختیار کلینی قرار گرفته، نسخه قومیه قومی در خلال بحث اول اشاره کردم که در مکه خیلی از مصادر از بدر یا کوفه آمده در مکه و یک مشکل که بعض از این مصادر مشکل داره. داری این مساعده مشکل داره که من نمیخواب توضیحات شده مناسب جا نیست که توضیح داره. پس بنابراین یک مشکل کلی در روایات ابن عبی عمر این از که نکنه سختی به لحاظ مرد داشته باشه. این روایت با این مضمون از غیر طریق ابن عبی عمر هم به ما رسیده همین روایت. و تعجب از مرمون استاد در اینجا توجه نکردم یا حتی مقرر ایشون طول مکاسب هم اوزه اگر آنین مکاسب خدمتون باشه نگاه بکن با خود مکاسب محرم ابو وقتی که میخواد روایات رو بیاره آخر روایات اینه لیکن ایشون در اونجا از عبدالله ابن سلیمان نوفری نقوم ان شاء الله تعالی اگر خداوند توفیق بده که خیلی یواکیوا رو کنیم. آخرای مکازم محرمه خودش یه روایت مفصل میاره. یه روایت طولانی است که خیلی هم عجیبه. من نیستندش خوبه. سندش خوبه ان شاء الله ارزش میشه که در حیاتش ارزش عجیبی که عجیبه در مصادر فقهی ما موجود نیست. اولین کسی که عرض شهید سال در کشوریگا آورده. کشوریگا آورده. ایشون در اونجا آورده. و مشایخ از خواهم هستند از هم نمیدونی کجا بود این حدیثیه ایشون مصمدن هم ذکر میکنه و سندش هم قابل ربوره فقط آخر سند عبدالله ابن سوریمان نوفری نگه مقاسب ربوردی نه بود کنند شیخ. شیخ هم این ایتی کشه میاره شیخ انصاری در همین بحث غیبت تقریبا تفسیلش و آخر مقاسب محرم میاره مرگون شیخ انصاری؟ این حدیث رو مرحوم صاحب وسائل اینجاست با روایت صاحب وسائل با روایت صاحب اثر کتاب الاشعه جلد 8 اشعه از این کتاب حج در اونجا با اول اشعه 155 154 روایت ریبت رو مرحوم صاحب اونجا آورده این حدیث رو تو جلد 12 ال اشعه در متاسب اول مای اختصر با و مای انبه غیلوالی اول همه رو میپی نفسه برو باید و این به حاکم احواز والی احواز که نجاشی ابن نجاشی نام داشته امام سادر نوشتن و تا حدی بیر مشغول بوده حالا باید تحجیب میکنم چرا دستبان ما نرسیده این خیلی تحجیب آوره اصافا خیلی مرموم خود نجاشی همین نجاشی خودمون این شخص بزرگبار در خود این فهرست خودش شرحالی هم از خودش داره احمد نهلیه نصر بشه که میاره که میگه احمد نهلیه تا میدستم جلد شیشون و همسون هم ان فلان هم دیگه نجاشی احمد نجاشی بعد میگه این والیه اهواز بوده و هوند نکرده به ابو عبدالله رساله من اله این رساله‌ای ای که نامه ای که حضرت ساده به نجاشی نوشتن خود نجاشی در شرح حال خودش میاره یعنی این معنی میشه که در زمان نجاشی قرده پنجو این رساله معروف بوده از اجایب اینه که نجاشی نگاه یا در شرح حال خودش احمد النهلی خیلی عجیب و از خودشان میگه ولن یارموسن نفرن لبی عبدالله غیره بود من چون این بحث گاگاه اشاره کردم یه بحث خاصی داره نوجه دست های خود علی معلی علیه السلام مثلا اونی که به دست خودشون نوشتن اینکه روادی یا اونی که امام حسن ماوصل و همینطور حالا یه مصادیق کتاب بود یا وصیت نامه بود یا نامه بوده یا چیزی ایشون مرحوم نجاشی حالا کتابش کتاب فرسته حالا هایی که متعرضه خود علی عبدالله علیه السلام میشه اینجا است میگه ولم یورا مصن نفت علی عبدالله غیر در شراحال خودش میگه امام صادق اون وصیتی که فرستاد به نجاش عامل اهواز و والی احواز این جد به منه این و خیلی عجیبه میگه ولن یورم و نکن در بی عبدالله غیرو غیر از این دیگه به امام صادق نوشتاری نداره حالا ما مجموعه چیزهای دیگه هم داریم مجموعه شرحش اینجا نیست باید مفصلت متعرض شد و تحجیب ماستو با این که نجاشی اسم، اسم، اسمی رو میبره با. میگه این مطلب رو لکن بین اصحاب نموده نیم دونم چرا این هم واقعا چیز عجیبیه نجاشی همیش توضیح این سند اون مصنف رو فقط میگه برای میارم لبی اون لعبی عبدالله علیه سلام غیبو. بی مناسط شرحات خودش و هر حال این یک نامه ایس مفصل قسمت های خوب زیاد داره انصافاً من با که دقیقاً به سفتن کردم به صورت یک مقدار یهو بس یه داره که حس تعمیر داشتن گفتن داشتن کار میکردن یک زن دیدن با طالب العلم این تو همین رساله است قلب من مثلا اون می گفتو که معقولی که خوب مناسب باشن نبید. این تو همین رساله هست ولی اینکه امام صادق بعد از حزن شعری گفتن اینم تو همین رساله است یعنی دو تا فقره منکر داره تو رساله صحبت چرا در لحظه خودش متعرض میشین به استثنال یک نظامت و ملکر در این هست بقیه خیلی خوبه یه تیکیش هم اینجا شیل انصاری او برده یه تیکه همون و این رساله به طور کامل تا اونجایی که به دست با توسط شهید سانی در کشور ویده در فرم دهم که این هم خیلی عطیبه چون نجاشی که اشاره کرده اقدر نجاشی گفت که این رسالش دیگه برشیده ما هیچ خبر مدونیم تا زمان شهیده البته تو سندش همین همون نبیات وقت نخوفی با که میشه گفت که لیه نمون میشه ردش کرد و یه کارش کرد اما مشکل البته اون سند اون عبدالله ابن سلیمان نوفریه که اسمش جایی نمده حدود عبدالله ابن سلیمان نوفریه که اون رسال نامش برده شد. اون راوی اخی که میگه امام صادر نامه از نجاشی آمده بعد ایشون جواب داد. اون اصلا اسمش برده نشده ما در کتاب خودمون در کتاب رجالیمون شاد 67 عبدالله سلیمان مثلا نخری عبدالله سلیمان سلیمان سلیمان عبدالله سلیمان عبسی چند تا داریم 6 تا 6 تا نجرشی هم سلیمان رو نام برده در فهرستش کتاب داشت لیکن بیشترش در کتاب شیخ آمده. در اصل و ساده. ترسادو این همه عبدالله دستوری مال مادر نیامده از و اجل از اینها معمولیه توسطری هم. چون معمولا یه اسمی و نجاشیم ور شیخ می‌مونه میگه و آدمو شیخ لغو کرده تون. به حمدی رو شیخ می‌خونه ایده می‌خواد خدا قانوسته. ایشونم متفاوت هم بیشتره عبدالله تو هم همینه چون معمولا ما رو باید حلالی آهانم عبدالله بن سریمان نوفری در کتب رجالی و فهرستی ما نامشن و در خوبی برده و نوشته که در همین کتاب کشوروی به این دراتی بشه رو و هر حال اون دوار یه مقداری مشکل به این درات پیدا میکنه و من احتمال میدم توی مجموعه این اسما یک تحریفی واقع شده مثلا نخری با نفری مثلا نخری با عقصی فکر کنم یک تحریفی واقع شده تصحیفی واقع شده تصحیف شد. یک کمی قلب شده و هر حال مرموم نجاشی از به نام عبدالله بن سریمان سیرفی نام میبره و از چی بشینه ارز کردم چند بار نجاشی به روات نسبت اصل نمیده در باره چون نشته لهو اصل و به قیلی لحو اصلا روا من احتمال میدم این همون نوفری باشه این سیرفی همون نوفری باشه احتمال اصلا رهنده احتمال میدم. چون نمیگه لحو اصلا میگه لحو اصلا اصل یعنی نامه خود هزرت اونجا آوی که هزر ساده که هزر یا رو تحریر نزوشی مصنف هزر میگه لبیارا مصنف نکن لبی عبدالله قیروه بود چون کسی از آن دن رشته منعرد که آنه خاصی تو خ معجمتون بنویسیم احتمال میدم که این عبدالله بن سلیمان سیرفی در عبارت نجاشی همین نوفلی باشه عبارت خراب و غلط برون شد یا اونی که غلطی یا اینکه غلطی یا دو غلطی چون چیز عجیبی که نجاشی در باید ایشان داره لهو اصل و ربا. اصل و روا خیلی عبارت غریبیه اون بود لبا معلوم میشه که یک اصلی بوده یعنی کلام اصلی امام بوده که چون راویشه و عجیبه که طریقش دیشون ذکر میکنه تو غیر از این طریق از کشف و بیوامده طریقش ذکر میکنه بعضی اخباری عبدالله میسرون به کتابی یعنی عبدالله نمیدونم اول یه اصل نبوده بعد میگه به کتابی همین عبارت نجاشی هم خالی از ذبهام نیستو توضیحات نگاردهشون ولی اسمش اومده انجام نداده به هر حال یه من یه اج... اشاره اجمالی کردیم آمد خواستا کار بکنم میشه روی این رساله کار کرد چون خب واقعا هم احاطقه و یکی از امتیازات که این رساله آقایی رو بسیاره رو ممنون شیعه و شعر ها که نداریمون کرد و مصفر کرد معظم ربایتش هم سندی بقید حدثا یه عبیان آبایی جو خال رسولله و قال رسولله این طوریه رساله به این نحوه همش مشتمل و احادیثه. یکی از احادیسی به رساله آمدیه همینیسی در به شیخ نهر شده حالا من تمام مقدمات عرض کردم. در اونجا داره وقال رسول الله در اون رساله وقال رسول الله منقال فی مؤمنه مارعت و اینا و سمعت و اوزنا من ما یشینه و, و یهده و مروبته این این توزه شده هیچه نگاه بگه رو سن شد تو روایات آخر روایات و اشتیه روایت عبدالله سلیمان نوفدی و اونجا داره منبال پی مؤمنه مارعت و اینا این همین رواید و سمعت و ازنا ما یشینو این حضم شده ما یشینو و یهدم و مروعته مروعت از مر این مردانگی و مردانگی او را از ذل درآورد. شهر نه ای با آر بیانه ای ایبو بی آری در عوض باشه. آیا احتمال داره در نسخه ابن عبی عمر شیخ وارد شده؟ روشن شد مقدمه متعارض کردی. اما این روایت مح... اینجا محمد بن همران از ابن عبی عمر در اونجا نه ابن عبی عمر نه محمد بن همران یه کس دیگه‌ای بره راوی اخیرم عبد الله بن سلیمان نوفلی ولی در اونجا این همینه دقیقا همین روزه فقط این عبارت حرض شده ممایشینه و یه دومه مروعته اگر اون باشه اون دیگه به قیبت خود از بر به اون شیخ هم جانسه قیبت بوده به قیبت نمی کنه فهو من الذین خال الله عز وجل من الذین یو حبون تشی الفاشه یعنی اگر شما بخواهید آوروی مسلمان رو ببرید با کاری که انجام داده این همه که پشت سرش باشه، جروبش همه باشه. اصلا این توش خیبت نیست این اشاره به اینه که خود آوروی مسلمان رو بردن جز باهش هست به همه ندردین این اگر متن اون باشه، چون عرض کردم. من سابقه هم یادم یاد همین متعرض شدم اینه بعد پیدا کردیم اگر اون باشه این مدنی که الان در خیار ماست این نشون میده که ذکر مارت و اینا و سمعت و روزنان این منالدین یا حبون انتشی الفاش اما اگر بیگیم در حقیقت اصل روایت همون بوده روایت عبدالله ابن سلیمان نوفلی بوده و مخصوصا که اون روایت منصوب به امام صادق بوده لبیارمو خرم نکنون لعبی عبدالله غیب بوده. که در حقیقت محمد نهمران، از اون رساله نهره کرده محمد نهون و بعد به کتاب ابن عبی عمر آنه و این این از که احتمالا در متن ابن عبی عمر دو چار تا کلمه هم حضی شده ممایشینه و یهده مروعته فا همینالذین مالالله عزلجل اینالذین را که بونن کشی از پارشه البته خب چون ما استاد این نوادی که غیر از چیز دیگه اثرش فرم می‌کنن احتمال اتحاد ندارن با این مقدمات که ما برای شما عرض کردیم احتمال اتحاد خیلی خفیده خب یک فهرست بسیار بزرگوار شیعه میگه اون چیزی که بعدی عبد الله نسبت داده شما رساله‌های دیگه هم داره از امام صادق ترجمه اصاله‌اش رو اینطور می‌فرهمه ترکیب آور باور که میگه لم یرا دربی عبد الله مصنخون غیرو این احتمال میدم که این عبارت اصلش همون عبارتی بوده که در کتابی بوده که امام به نجاشی حوالی اهواز نوشتن و این نسخه ابن عبی عمر سخت متنی داره اگر احتمالاً همون باشه این کلن از باب قیمت خارجه و انتباه آین هم برون درسته چون آب افراد بردن خود آب افراد بردن خودش پاهش هست او بروی رو بردن خودش حلاله. علاقم شامل جای دیگه اطلاع منقید و یه ذره در, لازم در باشه. علمی من دو شامل غیبت بشه، باشه. آقا یعنی شامل نه, با مثلا نه با یعنی عنوان. بلو به عنوان یعنی مثلا نه به عنوان یعنی غیبت به این عنوان نفر به قصد انتقام خودش حرامه. دستوش نمیکنه. این نه در قصد و قصد و حتی این توش هسته هسته بارمان گرفته این خیلی مشکلی نمایشی نمون بله ممکنه شما چیز دیگه بگیم این غیر از اونه این سندن و مکنن با اون فهم میکنه. اصلا با اون قرآن خارجی احتمالا محمد نهامران از همون رساله منصوب به امام ساگر این عبارت ارده باشه که امعبی عبدالله قاد در اون و به حال رسول الله تا من این کتاب مرموشی خب و قال رسول الله من قال فی مومنه مارعت و اینا و سمعت و اوزنا حلالی خود بنده روی همون مدانی خاص خودمون تو حدیث یک مقداری راجع به حدیث مشکل داره من متن حدیث این مطنی مشکل ها در کافی آمده این راجع به حدیث محمد بن حاله بحث دیگری که پیش آمده هست مثلا از به اون کتاب مستقلن اینشانده تو آخر مقاس محر بحث دیگه این رو که مرموم شیخ پدره کرده شیخ انساری اینی که در ادهی از کتب قیبت جزء کباهه زید شده با قول مرموشه بعضی از معاصلی وسوسه کردن که لیل روشن نزدنیم اشتار اون آروم که جزب کباهه نیست چون چند تا روایت داریم در کباهه که متون مختلف داره اشاره کردیم تو اونها می توی مهموعی عدلی قیبت هم عنوان نار و آتش و بعده آتش و وعیده با آتش نه آمده لذا از این جرس شوهه کردن یه روزه کباره نموش مرمون مستادشون این مطالبی دارم حالا مطالب ما مخونیم تا آخر مطالبیشون برده کنیم و بعد اونو تحرک دارد بشیم مطالبیشون برد نیست چون ممکنه این زودیان بگیم بحث تکرار نشه اینجا بگیم این بحث وحث توی به اصطلاح همین منحاج خودشون توی مقدم توی را داره. بحث اشتاقی دارد بحث کبار و سباید بله ایشون نرمون میکنن از صفحه 320 در هم جلده که نسباب فقاهه من ایشون میگن که مرمومه اولا اعواضی از شیفت انسایی نرمون کنن که دلیل در که این کبیره است یا به امور کسانی اند مما الله علیهن است ثواب او هدف کتاب در خیر او رو در شر بگذارند خب اخبار بعد نمو مایه جلوه کافی و, من من و بعد ایشان توضیحی میدن من نهو اشتره بین افقاها از تفسیر بین کبیرده و سقیره حکمن و موضوعه که متبیره با سقیر فهم موضوع حکمن چند تا حکم معروف داره یکی چیزی که سقیره طابعه برش واجب نیست در کبیره واجبه یکی اینکه کبیره مخلی به عدالت بنابر مشهور البته رو خوارج محترم که کبیره اونجور کفر هست کسی کبیره انجام داد پاته مشهور موجب فس دهنده می‌کنه و یک مقدار این بحث الان روشن شد براتون جنبه کلامی داره و چون خود این لفظ کبیره در قرآن هم آمده جنبه تفسیری هم داره پس این بحث کباء و وصاغ مردم شد هم تو مباحث کلامی که از مباحث معروف کلامی نیست نه اینکه خلاف از مباحث کلامی که یه میشه کرده این کردن اینقدر ها رشته شده سر این چون خوارج معتقد بودن که کباغرم موجب کفره اصلا نحوه خروج خوارج اصلا قیام خباری اینطور یا بود شمشیر شمشی برن مثلا با پلیس ها در با شرطه اولو یا با مهمون دولتی یا با وزیر. نه اونها از همون دن که از خونه میوه همه میکشند. در اولاد بکنی که این چون می گفتن چون حکام که کافرن چون خب فس و حجور رو ش مردم هم همه کارتون چون ترک رو معروف کردن چون همه رو پس مردم و از یعنی این مسئله خیلی مسئله کوچیکی بوده این مسئله ایست که خونه های عجیب و بری بایدیخته شده و از اینکه مردم رو هم و رضا معروف بود که مسلمان ها رو کلن کافر میدونسته مثلا این تکدیر زمان ما تا یه حدی قیل از خودشون گاهی پنج تا تا با جمع میشنن یکیشان هم برمان اون باش بیارد میکرد همین پنج شیش تا مومن تمام جامعه اسلامی کافه بود نه رو کافر کافه بود این بحث کبیره و سقیره که شما رو راسته خیلی بحث معروفیه تو کلام مخصوصه خیلی معروفه و حتی جواب فرقیش اون یکی از اون بزرگان خوال هست نه باز میشه یعنی مثلا بچه اختلاف داشتن بچه هم باید کشتر بشه نظر با این مبارکه انده که انتظر هم و بل... نمیده دو هم بچه هم فاجر هم که بچه هم فاجر هم کافر هم که به ظاهر آیه این کردن بچه بیگه کشتر نشید بله بقیه رو می کشت حاله در تفاسیر هم چون ظاهر آیه مبارکه همینه انتشتن با کباه رو ما تنهانم این لحظه ک به جایی سغیره دو تا لفظی دیگه در بران آمد یکی لمن الا لمن و یکی هم سیعات انتشتن رو کبار رو ما تنهانه در نکفر انکم سیعات کن این منشأ، این حکمه که سیعات سقائر مکفرات هست اصطلاحش این بود سقائر مکفرات هست یعنی احتیاج به توبه ندم خود به خود بین میرن اما کبائر توبه داره پس خود دقت قرآن بحث کبائر و سبائر یه بحث ریشدار در دنیا اسلامه که اونها هم کاش ریخه شده بقید به بحث فرقی نبوده حالا معلوم مستان اینجا این مناسبت متحرسه ما حالا متحرس که همیشون شدن میخونیم باید ایشونو مناقشاتی که در شرس اجمالا عرض میکنیم لیکن خود ایشان و عده از بزرگان به مناسبت اعتبار ادالت در مفتی تو بحث اشتار تقریب رو بودن. و تو خود اشتار نوشتند که همه گناهان چیزه اما مشبور ادهی از گناهان رو کبایر رساب کردن در کتاب منحال سالهی نیشد در بحث اشتار ترین برای و اصلا رفت کلمات او که ما الانه هن لا یومکن و جمع و بینه اما البته این لا یومکن و جمع و بینه ها چون توی این مسئله اضافه بر این اینکه روایت داریم به امام او عدالله علیه السلام چون چندین روایت داریم که البته بعضی‌هاش معتبره بعضی خیلی معتبر در شمارش تفاوت و با هم اختلافی دارن هم در عدد و هم در بیانشون که حالاشون آره ایشون یه یه تعجبی اصلا این راه هم وارد نشدن تو اینجا خیلی عجیبه همین‌طور قواص صحبت رو کردن روایت وارد رو نشودن با بوی داره در کتاب وسائل در حباب جهاد نفس یا معروب یا جهاد نفس در ایشان روایتش رو برده علاقی که به ماکانشون روایت داریم دیگه خیلی مشکلن و حالا نحمنداری میکنیم جمعه بینه ها چون این فوقش کلمه ها در کتب. چون هفته بحث کبیره و سبیره در کتب وحل سنت هم آمده در تفسیر هم آمده و حالا من اینجا هم اشاره رو کنم قبل از اینکه که و به احتمال بسیار قویل که خیلی واضح یعنی با ارتکازات و اغلایی هم جور در می آه. یعنی به عبارت مقرام ارتکازات و هم میان بین مراتب فرق می زنن فرس با مثال چون هر گناهی که شما تصور بکنید، این ظروب یک معیار مجال خاص خودشو داره بسیار نسلی رو زنا مثلا این زنا توی مشکلی که ایجاد کنه تو روابط خانوادگی نیستید یعنی بخص خانواده رو در جامعه متذجر میکنه اون وقتی در این معیار در معیار تذردل نظام خانواده مثلا زنا بزرگترین گناه حساب میشه خب گناهان دیگه هست نفس و نظر به اجنبیه این, این رو نظر به اجنبیه بعد منطقی به زنا هم بشه می به این نظر به اجنبیه لنس هعجبیه. این مسائل رو با زنا پرمی زشتن این محوری هستن خانواده در محور خانواده یک گناهی که خودو محور رو متضرده بکنه این میشه کبیره یک گناهان دیگه هم بوده که اینا زمین ساده, زمین ساده، अच्छा در به کل شيء انزا وزن و, و زن این, این, این زمین ساز اون گونه تفسیر با مثال روابط خارجی در مسئله روابط خارجی حالا یکی بیاد یک مقاله بنویسه مثلا فرض کنیم تایید بکنه رو مثلا فرض مثل اسرائیل مثل. بزنه از حدیث یهود این یه مرحله از بنا حساب اما اگر یه جاسوسی برای اسرائیل این در مرحله خارجی این به عنوان اصل حساب می کنیم یعنی ارتکازات و اغلایی ما روشن شد چیم در ارتکازات و اغلایی ما اینطوریه. هر کدام یک محور یارن در این محور یک چیزه هایی به عنوان اصل حساب میشه. این رو ما در اصطلاح قرآن چون احتمالا اصلا این تعبدی نباشه که آیه خوبی وارد شدن این قرآن هم داره این تشابه رو که من خیلی همیشه سر می‌کنم تحلیلی باشید و تعبدی. خود قرآن هم که میگه انتشابه کبائر ما تنها این اشاره ببینید در هر مجالی در هر محور یک کبائر هست یک سیئات هست. والفواحش الا من یک فواحش داره یعنی که خیلی خود کلمه فحش در هست معنی ظهور و بیان مثلا عدم المصافحش که خیلی واضحه کسیره روشن معلومه اون تواهش که در آیه مبارک آمده یا تواهش که در آیه دیگه آمده اون به معنی اینه که در این محور این اصله این تماما در این مهور نقیه الانی شده چون این دقیقا ضربه میزنه اما یه چیز اینجه هم هست حالا فقط قش قش کردن کار بدیه اما در این محور رابطه اقتصادی در این رابطه اونی که از اون بعدتر دزیه مثلا بخونیم از این محور اصلی اونه. تا میکنیم پس بنابراین بیایم بگیم اصلا آیات مبارکه یا روایات اینا در حداکثر قتل نفس شما یه چیزی چاورد دستی مجبور خب بله اما اون رو بکشیم خب دیگه یعنی از این بالاتر یه تصور نمیشه از قتل نفس بالاتر در محور خودش تصور نمیشه، پس روشن شد، پس دیو خود آیات خدا عیادتون که شد. گویی از دوسته کسانی هستن که احسان کبیره ما ندارن، همه کبیره هن؟ نه، اون یک کبیره که یعنی داریم. یعنی داریم. کبیره داریم، تنهاش که به ظاهر آیات کنن آقوندی تون در وایاتیک وادی شد. یه نویسنده سعیده و سعیده همه کبری هن دیگه سعیده دیگه نیست همه انجام داد موزه به عدالته یه نگاه ورزنیام که یک بار باز موزه به عدالته فهم نمیکنه نگاه حرام با زنا یک ما بیان نه ارتکازات و عقلایی اینطور نیست حتی نگاه حرام رو با زنا یکی در محور گناه یه دفعه بیاد یک مقاله بنویسه به نظر فرستون یه بیاد جاسوسی در دشمن بکنه این دو تا با هم دیگه اون که مزر به این باشه یه دفعه فرض از یه طرفدارون ما یه پولی رفته در سفارت گرفته یا یه رابطی گرفته یلا ببینن پول نیست اصلا اصلا جاسوسی میکنه خبر بده مراکز اقتصادی مراکز نظامی مراکز مهم رو این دو تا به عرف با هم دیم. و ان طرح بیایم بگیم این که در بهایاس ما و اصلش در بولان آمده این تشنه و کبائر ما تنها نهکر کر عنکم صیاقه کن این هم تعبدی نیست سایه میخواد بگن وشن لایوم چه در کرد برای ما اصلا فکر میو گناهان در محدودیت خودشون دو جور هم هر کدوم در محور خودشون گفت که دوسومتو کل داشه این به درمه دوسومتو درمه نفسه یه دفعه دست سالن چربه دفعه خود روهن اون روهن تماما دیگه به ذات چربه یه دفعه مثلا قضای شما شوریده به خود نمک یعنی بگیم مراد از سغائر که در استلاح خوبه ها آمده و مراد از سیعات که در قرآن آمده یا مراد از لمن این شیرا روابطی داره که لمن نمی‌خوام دیگه معاصر من فعلا وارد بحثه تفسیری میشم میخوام بشم بیایید ببینیم از لمن و هواهش که در یک آیه اومده کبائر و سیئات که در آیه دیگه آمده و بعد مسئله صغائر و کبار که در روایت آمده اینا همشه یک نکته عقلا چیزی تا تفسیر و این اونطوره اما در واقع لذایه تفسیرم در لغم آمده که با کبیرم بسازه من نیمه بحث به همین مرحوم حاله بحث سبائر و کبائر و زباده فرق این دوتا یه بحث اسلامیست نه یه بحث شیعی و همینطور که مرحوم استاد منکر سهیر و کبیرم و هر گناهی رو کبیره میدونم و هر گناهی رو مذبه به ادالت و برای سهیره باشه مشهور این است سوائر در صورت استمرار مزر به عدالته اما کبیره بارشم مزر به عدالته نظر به به یک بار ولو محرم باشه مزر به عدالت نیست من موساد میگم نه نظر به اجنبی ولو یک بار حواشه مزر به عدالته حاجی وافا میگن آها نه این روایت اتفاقا ده قیاسیه یعنی در از گناهان در فلسفه‌گری من توضیح ایجاد بدم این نظر اختصاصی بیشان ندارم اشتباه نشه ما تو سنویه هم این قاله یعنی این بحث سمیر و کبیر اگر آن رخ کردن اصلا کتب اهل سنت منجا مثل تفسیر قرطبین ها چون این نمیخوان کل بحث وارد بشیم بحث جایی باید بشه خود هم داره بازم خونده بشی که فعلا وقته بکن نداریم دقیق بکنید من الان یک نسخه رو ارشد کردم که ان شاءالله این حل مشکل رو بکنه خود بخود اصلا احتیاج دیگه به مقدمات درشته باشه بنابراین این ما در دنیای اسلام این بحث از اول مطرح شده اما الان چه ذهن در صحابه است تابعین دو تفکر همیشه در دنیای اسلام بود یکیش اینی که بحث صغیره و کبیره درستی است که اهلونیان معتقد ببینند در شیعه از ابن ادریس هم نهان شده ظاهرش ولی که در مواقع مشهور و علمای اهل سنت و مشهور و علمای ما فرق بین کبیر و سرگیر بودش البته این بحث خیلی از حالایی که جنبه سرگیر و کبیر داره است. یه بحث نقطه دیگری هم اون مسئله ادالت که معلوم های خویی محضرت کردن اون منحصر نیست مدتیه بحث ادالت به سرگیر و کبیر اشتباه نشه در محسوب ادالت یک زاویریم، بعضی‌داریم هم که آیا ادالت ملکه است یا نه؟ چون اونایی که تأثیر کلامی و خلقتی پیدا کردن ملکه را حالت نه ثابت می‌دونند. اونا میگفتن که این ملکه با کبیر از بین میره با سریعی ملکه از بین می‌رود. معمولاً استادیم می‌شود این, این دوستا با هدی خرد نشود. معمولاً استاد ادالت رو از زیادی از اولامار خود ما معرفی می‌کنند که ملکه ادالت نیست. مولیشون استقامت در جاده لازم نیست که حالت نخصانی ثابت باشه لا تزول الله به حسره. نه اون نیست اصلا ملکه تعریف ملکه راست هم هستیم تو بحث ادالت مفتح شده جا فعلا اینجا نیست و یک بحث دیگر اینه که آیا اصولا ادالت ملکه است یعنی اده ای که این ترمه بین سهیر و کدیر به لحاظه ادالت درشن چون نظرشون ملکه است و ا اونا اعترامشون این بود که ملکه با سغیره از بند نمیره اون حالت نفسانی راسخ این با سغیره از بند نمیره اما اون حالت نفسانی با کبیره از بند نمیره پس یه بحثم اونجا اونه که ایشان در اینجا اشاره نفرمیدن این هست لکن حکم سغیره و کبیره فقط بحث ادالتی جادیگه هم داره کنان هرز کردی ایشون بیگه بخته لفت دیگه رحمان کن politique pour attirer les